فصل 15 در این وقت گروهی از فریسیان و ملایان یهود از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند چرا شاگردان تو آداب و رسومی را که از پدران ما به ما رسیده است نادیده میگیرند و پیش از خوردن غذا دستهای خود را نمی‌شویند ایسا با آنان جواب داد چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید فرمان الهی را میشکنید؟ مثلا خدا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر کس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید باید کشته شود. اما شما میگویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم دیگر او مجبور نیست به این وسیله بانها آنها احترام بگذارد. شما اینطور قانون خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید ای ریاکاران اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی که گفت این قوم با زبان خود به من احترام می گذارن، اما دل از من دور است عبادت آنها بیهوده است زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم آنگاه عیسی مردم را پیش خود خانده به ایشان گفت به من گوش دهید و این را بدانید که انسان به وسیله آنچه میخورد و می نوشد نجس نمیشود بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون میآید او را نجس می سازد. در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند آیا میدانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شدن؟ ایسا جواب داد هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد، از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند. و هرگاه کوری، راهنمای کور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد. آنگاه پتروس به ایسا گفت، معنی این مسئل را برای ما تعریف کن. ایسا در جواب فرمود، پس شما هنوزم این چیزها را درک نمی کنید؟ آیا نمی فهمید که هرچی از راه دهان وارد بدن شود به معده می رود و پس از آن به مزبله ریخته می شود؟ اما چیزهایی که از دهان بیرون می آید، از دل سرچشمه می گیرد و آنهاست که آدمی را می سازد. زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی شهادت دروغ و افترا از دل سرچشمه می گیرند. و این هاست چیزهایی که آدمی را نجس میسازند نه نشستن دست ها قبل از غذا آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی سور و صیدون رفت یک زن کنانی که اهل آنجا بود پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت ای آقا ای فرزند داوود به من رحم کن دخترم سخت گرفتار ارواح پلید شده است اما عیسی هیچ جوابی به او نداد تا شاگردان جلو آمدن و از ایسا خواهش کرده گفتند او فریاد کنان به دنبال ما میاید، او را بفرست برود. ایسا در جواب گفت من فقط برای گوسفندان گمشدهی خاندان اسرائیل فرستاده شدم. اما زن جلو آمده پیش پای ایسا به خاک افتاد و فریاد زد ای آقا به من کمک کن. ایسا در جواب او گفت درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سکها بیاندازیم. اما آن زن جواب داد درست است ای آقا اما سگ‌ها نیست از ریزه‌های غذایی که از سفره ارباب‌هاشان می‌افتد می‌خورند عیسی در جواب به او گفت ای زن ایمان تو عظیم است آرزوی تو برآورده شود. و از همان لحظه دخترش شفا یافت عیسی آن محل را ترک کرده و از راه ساحل دریای جلیل به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست اِت زیادی از مردم پیش او آمدند و اشخاص چلاق و کوران، گنگان و لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده جلوی پاهای او میگذاشتند و او آنها را شفا میداد. مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص چلاق را سالم و شلان را روان و کوران را بینا دیدند، تعجب کردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند. عیسی شاگردان را پیش خود خوانده با آنان گفت دل من برای این مردم می‌سوزد الان سه روز است که آنها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند من نمی‌خواهم آنها را گرسنه روانه کنم چون ممکن است در راه ضعف کنم. شاگردان جر جواب گفتند از کجا می‌توانیم در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم عیسی پرسید چند نان دارید جواب دادند هفت نان و چند ماهی کوچک ایسا دستور داد که مردم روی زمین بنشینند. آنگاه آن هفنان و ماهیها را گرفت و پس از آنکه که خدا را شک نمود آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همه خوردن و سیر شدن و از خورده های باقی مانده هفت زنبیل پر شد. غیر از زنان و کودکان چهار هزار مرد از آن خوراد خوردن. آنگاه ایسا جمعیت را مرخص کرد. و خود سوار قایق شده و به ناحیه مجدل